از گروه جوان و فرهنگ به نام خداوند مهرا فرین سلام و درود بر شما همراهان شبانه شب خوب و آرامی رو براتون آرزومندم ایرانزمین زمین در زمینه فرهنگ آمیانه که افسانه ها بخش مهمی از اون رو به خودشون اختصاص دادن از بسیاری سرزمین های دیگه غنی تر و پرمایه تره. امشب در برنامه هزار افسان، افسانه ایرانی زخم زبان رو براتون نقل میکنم برگرفته از کتاب افسانه های مردم ایران گردآوری خانم جمیله فرهانی. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. روزی روزگاری در گذشته‌های خیلی دور مرد خارکنی زندگی می کرد که خیلی مهربون و سخاوتمند بود خارکن هر روز قبل از طلوع آفتاب به دشت و صحرا می‌رفت و هیزم جمع کرد بعد هیزمها رو به شهر می‌برد و میفروخت و از این را زندگیش رو می گذرود. روزی از روزها وقتی خارکن کارش تموم شد احساس گرسنگی کرد. صفره نون و پنیرش رو روی زمین پن کرد و مشغول خوردن شد. اما هنوز لغمه از گلوش پایین نرفته بود که یه دفعه صدای قررش شیری بلند شد. بند دل خارکن پاره شد. هراسون از جا پرید و خاص فرار کنه اما شیری در چند قدمی اون ایستاده بود و جای فرار نبود خارکن با خودش گفت خدایا حالا چیکار کار کنم الان که منو یه دخمه خواب میکنه راه فرارم که ندارم خدایا کمکم کن چی کار باید بکنم؟ شیر قرشی کرد و به خارکن نزدیک شد خارکن با خودش گفت خدایا من یه عمر به همه محبت و خوبی کردم بذار این دم آخرم به این شیر محبت کنم شاید خدا خواست و نتیجه داد و از چنگال این شیر رها شدم خارکن توی همین فکرها بود که شیر نعرکشون بهش نزدیک و نزدیک شد خارکن کس از ترس مثل بیت میلرزید بی اختیار با یه دستش سر و روی شیر رو نوازش کرد و با دست دیگه لغمه نون و پنیر توی دهن شیر گذاشت شیر چند لغمه نون و پنیر که خورد آروم شد و کنار خارکن نشست خارکن که هنوز ترسش نریخته بود پشت سر هم لغمه می و در دهن شیر می زاشته. شیر وقتی سیر شد به زبون اومد و گفت دست درد نکنه این که معلومه مرد نترس و مهربونی هستی دلم میخواد مهربونی های تو را تلافی کنم شیر از خارکن خواست که همراه اون به غار بره خارکن که چاره ای نداشت با شیر همراه شد هرچند هنوز میترسید و به حرفای شیر اعتماد نداشت اونا رفتن و رفتن تا به غار شیر رسیدن شیر یه جعبه پر از جواهر به خارکن داده گفت این مال تو هر وقتم به کمک من احتیاج داشتی بین به اینجا بیا و تبرت رو بار به زمین بزن من فوری حاضر میشم و هر ای داشته باشی برآورده میکنم خارکن که از خوشحالی سر از پا نمیشناخت از شیر تشکر کرد و به طرف خونهش براه افتاد وقتی به خونه رسید تمام ماجرا رو برای زنش تعریف کرد بعد اونها جواهرات رو فروختن و با پول اون خونه خیلی زیبایی خریدن از اون روز به بعد خارکن دیگه برای کندن هیزم و خار به صحرا نرفت خلاصه وضع زندگی خارکن کاملا تغییر کرده بود و اون هر روز برای شیر برای بریان می برد و اینجوری دینش رو به شیر ادا می‌کرد. یه روز خارکن به دیدن شیر رفت و اونو دعوت کرد که به خونش بیاد شیر گفت آه دوست عزیز آه من اگر به شهر بیام مردم یا از من می و فرار می کنن یا یعنی به طرفم حمله میکنن و به من ناسیب میرسونن. خارکن گفت نه نترس هیچ اتفاقی نمیافته. شیر باز هم امتنا کرد، اما خارکن اونقدر اصرار کرد تا بالاخره شیر راضی شد و قرار گذاشتن نیمه شب که شهر خلوته شیر به خونه خارکن بیاد و تا نیمه شب بد در اونجا بمونه. فردای اون روز خارکن و زنش غذای مفصلی تدارک دیدن و منتظر اومدن شیر شدن. شیر نیمه شب به خونه خارکن اومد. خارکن با احترام زیاد از اون پذیرایی کرد و اونو به اتاق مخصوص برد و به شیر مهربونی و محبت کرد شب گذشت و صبح شد شیر هنوز تو خواب بود وقتی از خواب بیدار شد دیگه زور شده بود خارکن و زنش نهار رو حاضر کردن و جلوی شیر گذاشتن شیر همونطور که مشغول خوردن بود آب دهنش رو توی سینی غذا ریخت زن خارکن که از توی آشپزخونه سرک کشید وقتی این صحنه رو دید آهسته به همسرش گفت شوهر مهربونم مهمونت خیلی با سخاوت ولی حیف حیف که با آب دهنش سینی رو نجس کرد نمیدونم حالا چطوری سینی به این بزرگی رو آب بکشم شیر که گوشای تیزی داشت این حرف زن رو شنید اما به روی خودش نیورد و چیزی نگفت شیر نیمه شب روز بعد از خارکن و زنش خداحافظی کرد و رفت خارکن هم تا آخر شهر اونو بدرقه کرد چند روز بعد خارکن برای احوال پرسی نزد شیر رفت دید که شیر ناراحت و گرفته به نظر میرسه خارکن هرچه سعی کرد علت ناراحتی شیر رو بفهمه نتونست تا اینکه شیر گفت رفیق عزیز هما خواهشی دارم خارکن با خوشحالی گفت بفرما بفرما دوست من شیر مکسی کرده گفت آه همین الان با تبرد محکم به فرق سر من بزن خارکن از این حرف شیر یکی خورد و با تجو گفت چیکار کار کنم؟ شیر گفت از شما خواهش می کنم با تبرد محکم به فرق سر من بکوبی خارکن خنده ای کرد و گفت <تصفيق> این چه حرفیه دوست عزیز آخه من چطور میتونم این کار رو بکنم تو تو بهترین دوست منی نه, نه نه نه نه من هرگز نمیتونم این کار رو انجام بدم شیر گفت ولی آخ من از تو خواهش میکنم این کار رو در حق من انجام بدی و شیر اونقدر اصرار کرد تا بالاخره خارکن قانع شد شیر گفت دوست عزیز. برو اون کنده درخت رو بردار و بذار جلوی دهنم که موقع درد اونا گست بگیرم و به تو آسیبی نرسونم فقط یادت باشه هر هرچی قطنتو توانداری به کار ببری خارکن هم ناچار هرچه شیر گفته بود انجام داد و محکم تورش رو بر فرق سر شیر کبید شیر نعرهی کشید و کنده درخت رو طوری گاز گرفت که مثل آهک نعم شد خون از سر و صورت شیر جاری شد کارکن با ناراحتی و نگرانی گوشه ایستاده بود و نمیدونه از چی کار کنه چند دقیق بعد شیر در حالی که از درد مینالید گفت آه آه حالا برو؟ و از برگای خشک اون درخت بچین و روی زخم سرم بزار کارکن هم به تندی رفت و مقداری برگ خشک از درخت چید و آورد و گذاشت روی زخم سرشین ساعتی گذشت و حال شیر کمی بهتر شد اما خارکن هنوز نگران بود و از کاری که کرده بود پشیمون شیر گفت قصد نخور دوست من آه حالم خوبه حالا حالا برو به خونت و تا یه سال به سراغ من نیا خارکن با ترجوب پرسید تا یه سال؟ آخه برای چی؟ شیر گفت آه، آه، بعدم بت میگم حالا زودتر برو خونه که زنت منتظره فقط یادت باشه که یک سال تمام به اینجا نیایی خارکن با ناراحتی از شیر خداحافظی کرد و به طرف خونش براه افتاد یک سال گذشت خارکن در این مدت بیاد دوست شیر بود و هنوز براش عجیب بود که چرا شیر ازش خواسته بود با تبر محکم به فرق سرش بزنه با خودش گفت آه این دفعه که به سراغ شیر رفتم حتما اصرار میکنم که علت این کار رو به من بگه خلاصه بعد از گذشت یک سال خارکن با عجل خودش رو به قاری که شیر در اون زندگی می کرد رسوند ولی اثری از شیر نبود که نبود خارکن سه بار تبرش رو به زمین زد و در یک چشم هم زدن شیر در مقابلش ظاهر شد اونا از دیدن همدیه خیلی خوشحال شدن و از هر دری سخن گفتن بالاخره خارکن تا نیاورد و از شیر پرسید دوست عزیز این دفعه باید به من بگی چرا از من خواستی با تبر به فرق سرت بکوبم اگه علتش رو نگی دیگه اینجا نمیذارم جدی دارم میگم شیر آی کشید و گفت چی بگم دوست عزیز میترسم از شریدن حرفم ناراحت بشی خارکند بتونی گفت نه نه نه نه نه بگو ناراحت نمیشم راحت باش شیر گفت اول بیا ببین جای زخم روی سرم باقی مونده یا نه خوب سرم رو نگاه کن خارکن جلو رفت و دید اثری از زخم نیست که نیست با خوشحالی گفت اصلا اصلا اثری از زخم نیست خوب خوب شده شیر گفت یادت پار سال اومدم خونتون خارکن گفت بله بله بله البته که یادمه شیر گفت اون شب اون شب زنت حرفی زد که تا صد سال دیگه جاش خوب نمیشه که نمیشه خارکن با تعجب پرسید زنم خب خب اون چی گفت شیر گفت زنت گفت شوهرم دوست با سخاवटी داره ولی حیف که آب دهنش سینی رو نجس کرد تارکن با ناراحتی و تعجب گفت زن من این حرف نامربوط رو زده زن من شیر گفت بله رفیق بله جای زخم خوب شد بله زخم زبون زنت هیچ وقت خوب نمیشه خارکن از خجالت سرش رو پایین انداخت و سکوت کرد شیر سری داد و گفت بیا بیا این کیسه ی جواهر رو بگیر و برو دیگم هیچ وقت نیا جا هیچ وقت خارکن هنوز از شرمندگی سرش پایین بود و بعد بلند شد و با ناراحتی از غار شیر بیرون اومد و به طرف خونش براه افتاد. افثانه ایرانی زخم زبان رو براتون نقل کردم امشب از گنجینی غنی و ارزشمند ادبیات شفاهی مردمان سرزمین عزیزمون ایران برگرفت از کتاب افسانه های مردم ایران که خانم جمیلی فراهانی اون رو گردآوری کردن افسانه ها عظیمترین و ترین بخش گنجینی ادبیات آمیانی هر سرزمینین به همین علت مدت هاست که دانشمندان جهان به به عنوان منبعی غنی و پر ارزش در زمینه پجوهش های جامعه شناسی چشم دوختند و برای اونها ارزش زیادی قائلن زار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالکور ویرا استار فریبرز نوربخش اجرا مهران دوستی سرآبردار آسیه همتی تالی کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدر